لا داره مسئله داره مجمعین و محمد که این محظومه و محمد اصلاح در باره و ضرور و اصلاحات حفیزه خوندیم از خیلیم در توضیح کلامشان در توضیح اصل مسئله حصول مطلبی را هم که اون مهدادی که مرزی توی شهران بازوش بحث کنیم متعرض میشید بردو بینید مثلا در, در کشه است که در صفحه 137 این جلدی که شما روی 47 باشد شد جلد دو هم که در موافظ به اصطلاح قطعه از اما که تابسو برمالی در اینجا در صفحه سادسیوه هم فرمودن که لایخ و ادن خودیت زواهر و ممارس سلام علیه و اقلاقی محابرات و استقر و بنا و معدل عمل به جمعی امور که زواهر ای که از امور ارفیس که ارخ انجام میده و شارعه هم اختراع خاصی نداره در این جهت همراه دحسی که داره همراه همون طریقه ارفیس و لذایشون میگه که این محضر واضحه که ظواهر و سخن رسول الله خوشی از داره لذا رکب نافی فکرست مسائل علم الاصول که بحث خوشیت الظواهر از مسائل علم الاصول میست در انها من الاصول المسلمه بلا خاجت از در آنها. خب بحث خیلی ترتیب آورد ایشان خود اگه این مسئله که دو اصول میزم قرار میگیری لازم نیست که اصلش مسلم باشه این هم از کرا همون ما حدودشه مازم سه تا محضر شما در اینجا بحث میکنیم پس این روز به این محصول میشه بلکه ما از کنیم اصولا در تنظیم حفاظ اصول ما باید این بحث و به الفاظ احساس بدیم که در این بحث الفاظ هم مبارس سهرگی و هم مبارس کبرگی و هم مسائل اصل وحس اون که به لغت برمیگرده و اون که به لغت عربی برمیگرده حتی به لغت تاریخ و خصائص لغت عرب خصوصیاتی که داره و علفاتی که در این لغت در واقع وجود، استحباق، بامن، کراحت و عباهه به کار بوده این توبیادشون سابقاً عرب دیگه تکرار نمی کنی. اینه که ایشون می که در فهرس مسائله موسیقی این, این نیست نه این هم دوز امده مسائله حالا یک خصوصی یک جهت آم میشه جهت اجمالیش قبول باشه معنیش این نیستی در مسائله برس لازم خود اینشان می درسه جهت بحث میکنم خواهم که درست جهت بخص میشه تو اصول برسه هم را اولی که ایشون پرمودن آیا گفت جید زواهر این بحث معروفیه در بطور وقت سونات هم از بوده دیگه خیلی عزشه علمی نداره ما خیلی متصدی این جهر یه مقداری محبوم های شانس نسمانی در پایش مبارک کن متعرض این بحث شدن آن میتونم مراجعه کنن چون اینا خیلی بحث به نظر ما ریشهی در مسائل نیست و خیلی تأثیر فراوانی نداره و اصلا علمیتش هم روشن نیست آیا حجیت زواهر مشکلت به زن به وفاق یعنی ما زن پیدا بکنیم که مراد متکلل مراد از وفا، یعنی مراد متکلل میه یا نه زن به خلاف یا هیچ کدوم. این یه بحث اول بحث دوم هم کلام محقق قومیست که حجیت زواهر مختصم به من قصد اکمامو پس و هم حاجیت خصوص زواهر کتاب ایشون فقط ما در این سه بحث در اینجا بحث میکنم بعد هم یک و زیدی داشتن که ما زید را اول خودیم و آنوان مقدمهی پس و روشن هم هست الان وقتی مصالبه ایشون رو میکنیم با همون زید رابطه داره اما هم را اول ایشون فقط اشکال شکری که زنده. به خلاف هم قادر میتنه ما زن داری که ایشون احتمال بیدیم چون اصلا بیگه موردش دیگری باشه مجرد احتمال و زنده به خلاف هم قادم نیست پس زنده به وفاق شرط نیست زنه به خلاف هم مانع نیست چون ایشون میگن مرجع در بوجیه زوافر و خلاص اومد از فرمی مرگای که ما عبادیشون می‌کنیم، برای اون نکات ریزیست و نرا انال اوحلا لا یعذرون هل عبد المخالفه لظاهر کلام المولا عن مولا یعنی و یعنی از تذرن المخالفه به عدم زن الرفا هگر عبدی کلام رو مثل مولاقش کف آب بیاری یه من احتمال دارم مراتونه از آب چیزی یه باشه به ما شده میانه احتمال دارم اغلا رو معذور نگونن لا یعن دارم از کردن سابقه هم بس کنانا گذشت در موادس صحرا هم گذشت و تکرار کردیم که دیگه بقیل من رو گرگاه کننده بوشه آیا در دو بحث اساسی یکی مسائلی که برمیده به روح قانون و قانون گذاری و یکی هم توی مواقع استزها تمثبی میکنن به روحه عبدال مولا هم توی مسائل روح قانونی مثلا فرس مثلا میگن دیگه که موتی امولاست حتی اگر اقتمال که این محلت محلوم مولا سال انجام بده محتضای عبودیت اینه احتیاط بکنه. این احتیاط محتضای عبودیته یا حالا محتضای عبودیت مطلقا یا لاعقل محتضای عبودیت نسبت مولایی که مولای حقیقیت مولای تامه در مسائل قانونی و کیفیت قانونی و حتی اقعاب و شتاب و تمام اینها مسائل عبدالمولا رو مفرح می کنند اگر مولا به عبدالشبه و همچین عضوی او این عضو مثلا قبول داشت. این در مسائل قانونی در یه سری مسائل ام استدهاریه. تو اونا هم رابطه عبدالمولا رو مثلا اگر مولا به عبدالشبه و آب آبیار ازش حجوب می فهمند لوگار جنی ما ازش حجوب این در معالم هم و در اتفاق اصلا این به صورت قانونی در آمده مرموم اصطاق بفاقند مرموم نایمی داری معاصل نما از باسه مرموم نایمی می کنمانه لجوب اطاعت مولا بر عبد به حسب اوحلات ایشون به حسب عقل اصلا مرموم اصطاق می کنه عبد واجب می بر عبد که اطاعت مولا رو بکنه. حالا مرموم نایمی سردوش شد باید جا عقل با شما بیشتر اوحلات پس اینا در دلالت هم همچون که در اینجا تصویح می و دلالت کلام رو بردن رو مسئله عبد و مولا این رو من توضیح دادم این سابقه علمی هم در اصول داره مرحوم سید و در کتاب ذریعه ای خودش این مطلب رو ذکر کرده جواب هم داده که اونجا خب عبودیت قرینه چون عبده این قرینه میشه. به از خود کلام آبیار آب وجود در نمیاد، چون وجود اطاعت مولا برشن چون میدونه است. پس این بحث بحث جدیدی که مثلا مرمون نایمی آرکوی پنزه این علا مرمون ما اینطور نیست این اون تغییری هم که مرمون استاد دارن راجع به به حکم عقل باید حتما یه نوع توش باشه آن ما داشته همون لازمه این که آخر فکر میکنه روح جوی اطاعت مولا بر آب. بعضیشون قائل به شرایط بردگیری ذاتی هم خب میذنده میانه تو خلاصه وی مشکل اونه که همیه عرصه در کشور جمهوریتش بردگیری ذاتی رو قبول داره. یعنی خدا اندامات آلو است ولی بشر وجودش رو دو خلق کرده. یک ذات عده بردگیردیگری یعنی. هست. این استقبال از یک بردگیری ذاتی. البته ما موضوّطهایی نظر می‌بینیم و وقتی که آب رو میکنه آدم داره می‌گه زود بردگیری ذاتی نه عادتا اینکه عقل حکم میکنه به وجوب اطاعت مولا برعظم حالا مثلا تو این زمان ما که دیگه برندگی در سراسر جهان الغار شده اصلا در ضمن بر جهان ناظران پیدا میشه رسما الغار شده بعضی این تعبیر به و عقل کردن واقعا این امکداری که جور خاصه میشه یعنی همیشه ها اگه نگید این افکار اصولی بخواد ترجمه بشه در سطح دانش جهانی واقعا احتمال به ما به خندن مثلا عقل حکم می‌کنه به اطاعت مولا بر عبد و از هم چنین کہ این مطلب کلاً درست نیست این حکم عقل نیست این یه نظام اجتماعی معینیه شرعاً مجرع شده و اصولا رابطه عبد و مولا رو چه معین می‌دونه یعنی بازیچه طبیعیه که بگه اطاعت عبد بر مولا اطاعت مولا بر عبد در چه حدی است کجا حد داره رو مؤاخذه بکنه کجا حد نظر و نمیشه زیر بنای اصول قرار بگیره. تفاوت کار خیلی زیاده روافظ مولا و عد و این که رو معذور بدونه یا ندونه اینها باید ما از روایات و از عدل سمیه و وزیدی رو بیان بکنم این که ما در اصول بیادیم و اروزی مقنای تفکرات و اصولی خودمون قرار دادیم و استمتاج و اصولی بکنیم این یه نقداری مشکلات اساسی داره نه اینجالا مشکلات بکنم و از اون برسر اگر باید لغت این دیگه باز بکتر اون قوض بالای قوض این میشه یه اجتماعی معینی یه بردید. یه نظام اجتماعی که در طول تاریخ بوده ممکنه بعضی از زمان ها. در زمان ما اسمش عرض بشه یه یک شکل دیگری موجود باشه و نظامی نظامیست که بلادشتال در واقع خارجی یک عرض بسیار عریضی داشه چیزی نیست که واحد باشه فیلی از موای بودن که کاملا ظالم بودن میکشتن تو آب میش یان هر کاری میخواستن راژع برده خودشون از رواب که با برداشتن از بهاس حیوان هم کمتر بود. هر چند بر در جنگ ها نوشتن از وقت اصلیر دن. دایی میشد یک نفر ننی رو به سه در هم میختن با این که یک گوشان مثلاش ه در هم در درم بود. از قسمت که قیمت یک گوسان هم کمتر بود قیمت یک انسان. کشتن او آسید زدن او او او, او و در قوانین روم کردن رسمن جزای مراسم رسمیشون بود که میوردن بردار ها رو با انگهی در میداستن که یکی دیگه با کشید تکباره بکنن و لذت میوردن که استعمال گلادی یا سال میگن یعنی میخواهمدن این چیزی نیست که ما الان بخواییم در اصول اون رو زیر بنافران بگیم و الان تقبیل این که بخواییم مسئله نظام بردگی رو مطرح یک نوکه اساسی اینکه فقط نظامه که بعد از سید مرتضی یعنی اگر ما فرض که در باب برده مثلا معتقدیم که علی حرف محتمل هم از استاد از مولای خودش باید انجام بده غیر از حالا مسئله بردگی اصولاً یک نکته قانونی داریم. یعنی بخویم قانون بگیریم باید این نکته رو چون در قوانین وقتی می‌خویم زیر بنا تشکیل بدیم باید تمام خصوصیات مراعات بشه من این توضیحاتشون چند بار دادن می یه بازه برس بشن زیبا قرار دادن قانون دردنی برای قوانه این دیگه این معناست که مثلا یا های لدینا آمنو که در قرآن آمده نسید که یک مولا یه کتاب به صد تا عرض و درده خودش بگه در من هر کدوم یک مثلا لل و آقیه این که مرمون نایمی زیادی کتابات رو منحل می به افراد این مناسب با هم یعنی یایی هلگینا آمنو مثل این که انسان به سر تا برده خودش رویه برمن آفیاری که منحل میشه از که اونش تکیه خاص خودشون هست این یایی هلگینا آمنو این جولیت هست این توزیاله چه هست من سابران گفته و کزاله توی مسئله پس رویه با مثال امروشه مختصی نهری از دیگه در حقیقت خودش مسئله بردهی بوده دیگه مثلا اگر مولا به خودش خودشون گفته برو آب بیار بعد آن داره عرض نماز می‌کنه میگه دیگه چرا آب بیار خب عمل نمیشه موظن خیلی از این مسائل و اصولی در همون شرایط خاص خودش تمدید شده و اون نقطه بوده خاصه مثلا مقدمه واجب واجبه و همین طور بحث امر به شی مصدیی نهی از همین طور مسئله اجتماع امر همین طور به الاسی حتی در مثل اوامر غیری هم باز یک نوع نهی میدینن نه, می نه که اوامر نفسی مثل اگه مولا به برده خودش باقر نام بخرد دو خیابان راه داره به نام بایی یک خیابان مولا به شوته هیچ رفت تو این خیابان نباشه توی یک خیابان دیگه اجازه خب اینجا به هر فهم ارفی فهمیده میشه. بعد دو خودش بطه اگه این خیابان ممنونه رو از اون خیابان نباشه اینو می رو میفهمه ارف میف دقیق بکنید ما برتر هم بخواییم بگیریم باید یه تحلیل قانونی بدید اصول کارش تحلیل قانونی نقطه یه بردگی قابل سریان در ما نحنو نیست چون در بردگی ذات برد مهت مولاست اون نیازدنی میشه چون برده به تمام وجودش و سخونش و و, و تمام وجودش مهت مولاست شما باید این تصور رو در قانون هم کنید خود بکنید شما اگر بخوید قانون رو تصویر بردی و عبودیت نظام اعلم مولا بکنید باز اینجور بردی این که در بعض از روایات ما سندش هم معتبره خیلی عجیب من احتمال میدم شاید نظر اساسی هم به همین معنا بوده ولی علم و اندالله. از امام رضا یا اینا مردوم چی میگن از امام میگه اینا میگن که مردم عابد شما هستن عابد در خوب شما بخص می کنید حضرت اتان نه خود گفته اینا برده نیستن این نمایج و علیه این خواهد کنن اخواهد کار بکنن ولایت ما برگونه هست خواهد ما باشی بحث بردگی نید این خیلی روایت سیورسند هستند هست مرموم ما های پویتی مناسبه که بحث بلاد فقیه آقاده توی بحث بلاد فقیه هم مرموم های بحرون در قطع بلغت های فقیه آورده خیلی زیبای خیلی این رواثه روايه واقعی هم داره خیلی لطیف این رواه بنظر ما اجازه کی فرض ما بر نمی‌ستن بر ما که قواعت غیر از برد یعنی می‌خوام این نقشه خوب دقت بکنید اینکه در مثال‌های عربیش این تحلیل نکنید که من اینجا بگم چون اصلا این رابطه عبد مولا فقط مسئله رابطه عبد مولا نیست که سید گفته اصولاً در رابطه عبد مولا یک دیگری هست و اون ملکیت عبد اگر کسی بخواد اگر کسی بخواد این تصور رو در قانون بیاره باید این تصور رو بکنه که مردم ملک آنون هست مردم ملک حاکم پادش هست باید این تصور بیا. یا پرس کنه مردم ملک که اون نظام هست مثل حاکم ملکی که عرض داره این نیست، اصل این تفکر مشکل کارش اینجاست لذا اگر پرس کنه ما در رابطه عبدالمولا گفتیم بکنه. حتی کلام مجمل رو هم قبول بکنه اون رابطه عبدالمولا نقطه دیگری داره به درد ما نحنفی نمیخوره. اون نقطه در رابطه عبدالمولا ملک بودن ذات عبدال مولاست این مصدر که ما در تاریخ بشریت انهای این ملکیت ها بوده اجمالا درسته حالا تصدیره به جد تاریخ که در کلمات مارسیست آموده درست نیست اما اصل مصدر درسته چون در بردگی خود ذات برد ملک مولاست فرصول در نظام تعدادی که ما در وقت عربی فعلا به او اقتایی میدیم ذات کشاورز کشاورد او زمین کار میکنه که ده او زمین کار میکنه ده ملکی شخصیه کشاورز ذاتش نیست که کسی دیگر نیست اما عملش نیست دیگر نیست ولی ذا این که سابقه که بود نظام و رعیتی به سنت میفروخ این کارگری که کشاور هم که بود با همون ده جابجا وقت در نظام سرمایه‌داری فعلی در نظام این, این که در بعضی عبارات شما این که های یک های خاص در نظام اجتماعی و اقتصادی اصل مطلب درست سال ترتیب آثاری که میگن اشباحی جهات دیگری که الان نمیخوام وارد این بحث بشن اما در مثلا پرسیم کارگری که در کارخانه کار می این اضافه بر اینکه که ذاتش صاحب کار نیست سرمایه‌دار نیست اضافه بر اینکه کارش هم کارگر اونجا داره کار کنه کار بکنه تعلقش به کار اینطور نیست که منتقل دوشه بله خودش کارش در اختیار دیگری خرمان میده اضافه اینا مثلا بعضی دزمار سو که یک شکل دیگری نیست مثلا از بردیگی لیکن با یک درجه زعی نمیگم دونیم خبالا باید بردیش. این بردیش اما که این اجمالش, اجمالش. اجمالش. نیست اما این تحقیقی بود که ترتیب آثار داره، محلش که با صحبت دیگه بشه جشن دهیم. و هر حال اون چی که الان من در مقام اثباتش این مسئله ای که مردم استاد و دیگران حالا دیگرانشون ثابت بودن جای خودش، این که تلمات الان نوشته شده، در خود زمان مردم استاد برگی در کاربرد جهان الغاز شده. اوردن این مطلب که اگر عرض بگه من زن به خلاف پیدا کردم و من از داله که نمی کنم. این روشن نیست این مثال در ما نحن یک عرض کردم در نظام بردهی یک نکته هست و اون ملکیت عبده اون ملکیت ممکن از های مختلفی گرفته باشه دو ما در مسئله زواهر کاری به نحن نظام اجتماعی نداریم این مشکل حل باید باشه مثلا تو مسئله زواهر یه صحبت هاییست که بین مردم هست کار به شکل نظام اشتران. برده با مولاش باشه مولا با بردش باشه برادر با بردش باشه یک بار روزا دو نفر دشمن با هم باشه فهم رو کنه مسئله زهورات اینطور نیست که به رو قانون بردید یعنی به روی مسئله رابطه هم دو مولا این راجع به زهوراته لذا در اون مرحله وجوب هم از سریع. اذه گفتن که این وجود یک امر واقعی نیست از لغت در نمیاد بلکه گفتن خود افعالت در متن شیخ لغت دلالت بر وجود نمی کنه این تو قانونه که میاد در بر وجوده عرف خاصه ما توضیح دیں بله حالا وجود و معنای وجود و آثار وجود و اقسام وجود این عرف خاصه اینو قبول داریم اما خود الزام یک امر عرفیه هلای ورسیت ملزم میتونه علی ردیقش ملز الزام به وجود اصطلاحی اصطلاح خاصی و بلکه به اون قاعده عامه که هر که ما احتیاج بشد داریم باید طبق اون ورزه بکنی ماده نیاز الهاجزه به اون قاعده عامه باید برای الزام و لزام به نظر ما افعال در متن لغت برای الزام هم. نه در قانون در متن لغت برای الزام هم. این نیازی است که انسان در زندگی خودش داره این مساله زواجر رو وجیت ظواهر رو بردن رو رابطه عبدالمولا یعنی روی نظام خاصی رابطه معین این کار درستی به نظر ما نیست نه بردن روح قانون و کیفیت قانون و خصوصیات قانون و کیفیتش که ما استظهار بکنیم این رو ببرین روی عبدالمولا اون هم درست نیست در خلال بحثهای قبلا چند بار این رو ما مطرح کردیم نه بردن دلالت و ظهور روی روابط عبدالمولا اصلا به طور کلی ما در مسائل سابق من میدونیم و خواستیم که ازیه چه بازم اینجا از میکنیم حالا اینجا دیگه شد این اصالت الحیهه که مرمون استادتان در تعبوده این اشاره است یک بحث واقعا سابقه دار و اون بحث اینه که اصولا ما در اصالت ظهوری که در وقت داریم خیلی از یک فهم عرفی ما بعض جاها در نصول شریعت داریم یا درباقه قضاقت داری این مشکل کاری اینه در نصوص شریعت چون بحث قانونه این شبه هست که ما در مباحث قانون هر جشت شکل رو به قدر متعقن بگیم و به اکثر بگیریم بس این رفتی به ظهور نداره اصلا این نحوه بحث این رفتی به ظهورات نداره این که اصلاحیه تعبده یعنی ما بیاییم بگیم همونی که ظاهر کلام توست ولو قرائم برخلافشه ما معمولی به این کنیم، بکنیم ببینیم این یک زمینه خارجی شده معمولی بایی باید خارجی آمد این تحبوت به خاطر یک باید یک زمینه خارجی ما در باب قضاوت بنای مثلا علماء اینه که به بعد در زباده و میشه با این تو نداره چرا؟ چون بنای باب قضاوت یک احض به کلام افراد به حفظ اموال و خصوصیات مردم و حیثیات مردم و دو رفع تنازه این رفع تنازه نقطه مهم مهمی اما اگر ما در واقع ادا و رفع تنازه به کمک ما آمده و در لحظ کردیم این معناش انعقاض ظهور نیست. حالا فرسین اشکیه حقیقیات درس باشه شما عبای قشنگ میگم که عبای خوبیش میگه این مال من نیست مال زید نه مال عمرو خب این الان خطروشی میگه عبا رو زیده به زید نه قیمتش از به عمرو میاد چون درست نیست خب قطعاً این درست نیست خب قطعا یه خب چیز دیگه چراشون حج از اموال مردونه احتمال میدن دومی درست باشه احکام را اول تری اینا انعقاد و ظهور نمیاره این بحث اساسی و ماهیه ما یه بحثای رسوبها به قضاوت داریم اینا این ظهور نمیاره منشه این که از از علمای اصول چه سن میشه شیعه گفتنه اساس و لحیطه تبدیلی اینه این اشتباه اینجا پیش آمده منشه اشتباه روشن شد رابطه عبدال مولا این اقاد ظهور رو حرفی نمیاره این که مثلا اینجا خودشون پردونه رابطه عبدال مولا تصدیل می کن. مثلا در این در این بحث اگر از رفت این موادسه با در کتب سنی ها خیلی از این فروع از ها تریفه دارد ماها الحمدلله کم داریم اما اونها زیاد دارد مثلا این گفت لهو علیه کذا درهمم لهو علیه کذا درهمم لهو علیه کذا درهمم خب ما به اصلاقاتی ما این کلام مبهم روشن نیست با فرصیل رو کنه خب به چی اقرار کرده لهو علیه کذا؟ خب اینجور میفنید این قرد مینید حالا میخواد رفع بده نفس بده جر بده اما پس این لغویه آمانا دفارت که گفتن اقل عددی که بعدش اون به اصطلاح معدود مجرورت کرده پس لفو علیه کذا دیره همه این لفو علیه معدود دیره همه امتون اقل عددی که بعدش اون معدود مجروره ما قبلد سرد نداریم پس لفو علیه کذا دیره همه این لهو علیه کدازیار علیه... همه اول عدد اهده اشر یازده چون منصوب اونه اول عدد اینان منصوب پس قادم این تو دیگم لحو علیه اهده اشر یازده دیگم خب این حسن اگر ما این مطلب رو فرصم روایت هم بیاد ما این مطلب رو قبول بکنیم، در روایت داره که به ما هم که نه داره مال کثیر بسیر کثیر چقدر بارو بارو هم. هشت هم داره با اون شخص هست هست شما غذابات فیغمبر حسابی هشتا بود اگر این روازم قبول بکنیم تعبود اسمش میزنیم. لا قبول دیم. خب کسی زیاد از تصابه بالاره کسی میزه اگر ما باشیم متفق قاعده و زورات لفظی مگر تعبود خاص بیاد اگر گفت و علیه کذا درهمن کذا درهمه ما در فهم عرفی خود یا کلام شما مجمله این کلام مجمله به درد نمی اما در واقع قضاوت چون میگن اقرار کرده یک یه, یه اقرار دو مسئله مال مردم مفرحه به قطعه زمینه آمد تو کار این مشکل شد که اینا آمدن گفتن اصاطالحیقه را ما بودن قبول بکنیم و یه مقدار هم در لسان روایات به خاطر اینکه که داشتن که حکم این باشه یه نحوه احتیاط و انصاف قضی یک ما وقتی بحث زهورات رو مطرح می کنیم این نقطه اصلی اصولا نظر نه به باب قضاوت داریم نه به باب تابوت داریم نه نظر به باب قانون داریم نه نظر به باب روابط هم دو مولا داریم زهورات دیگه. مفهوم می مفهوم واضح زهورات یک باب واسه ارفی است اینها خصوصیاتی که آمد زنیان آمده اونستون قراین عامه رو خب مولانا برعکس اگر قراین ایشان باعث ثابث بشه بعد از ظهور برسه اینو پس تخلف بکنید خرج شده دست اون منشأ خرج این شده که بعضی از ها یا رابطه ارض مولا من الان توضیح دادم رابطه ارض مولا یک زمینه اساسی داره ملکیت الارض مولا ذاتش به مولاست این زمینه شده و روزا اگه گفت آب بیار میگه من احتمال دارم باشه اون زمینه رو در نظر بگیری اگر یک کلامی رو گفت که احتمال داشت بلا که این ایزاد ایزاد رو داشت مثلا میگه آب ساعت دو بیار میگه من فهم آب ساعت دو رو آب برای وجود میخواد نه برای فرزن اون منبوض نیست من چی فهمیدن باست این احتمال هست لیکن عرف کلمه آب رو منه خودش میگه ساعت دو رو لیکن این که این کار رو میکنه نه به خاطر تعبود به اساس الهیه هست. تعبودی تو کار نیست یک زمینه توی کار آمد. این مشکلی که ما در ظهورات و مشکلات لحظی در محسون فرقی داریم. در روایات داریم. در آیات هست. این اصلا نکهش اینه. یک زمینه خارجی آمده لذا به بحث ظهورات و مشکلی کرده. مخصوصا علمای اهل سنت که احادیث صحیح کم دارن یه کم دارن یه مقداری اینشانا سوزید میدن برد یه مقدار زیادی از آیات قرآن مطالبی استفاده کن که اطلاعا قابل استفاده نیست اصلا من کام مومنن که من کام فاسقن لایسته بود کام فرن که من کام خب ابن حزم به این آیه تەسوف میکنه که معنای این آیه مبارکه این است که کافر دیه نداره، مؤمن داره. خب... کجا آیه را چی میشه؟ سَغَرُ آیه، ذیل آیه، اشعار آیه. اصلا کافر دیه نداره، مطلقاً این تەسوفه به آیه. اصلاً من قرآن موقعاً که من قرآن فال سرام. شیخو، دیگه کاملی شما دیگه. بیا اگر گفتیم اونم دیه داره، یک سالی. خب حالا فرض کنیم بگیم دیه 10م، که مشروع ما شروع بهنا صمون یک لازانه به دیه یا یک 10 حالا اون یک لازان بردم بردا یا 1/3 گفته شده. یا 1 گفته شو یا اخری مصاریان گفته شده. اگر دیه او قرار بدهیم کمتر بازم بایستمون از آیه مبارک در نمیاد دیه نداره خوب فکر بکنید از آیه مبارک در نمیاد آیه چقدر این مقام دیه داره لذا این نکته رو به قفل بکنی در کتاب اهل سنت سعی شده چون روایاتشون محدوده بعدم روایات مشکلات لفظی داره قرائن داره مشکلات داره سعی شدن بیش از اون اندازه متعارف رو استفاده بکنن برای این اندازه بیش از متعارف منتجه اصلا به اصول تعبودی اصاطر حقیقه تعبودی است. اصاطر حقیقه تعبودی هیچ کده و از اینا تعبودی نیستن یک فهم و است. و ما اصلا به دنباه دیگه الهی تعبودی نیستیم بعد ارز کردم تو باب غذابت خوب دقت کنیم تو باب غذابت مشکل داره آنین و که این مال ظهور نیست این یه چیز خارجی زنیمه شده اون چیز خارجی یه بار که ما حال حفظ حقوق دیگه هم بشه میگم مال من نیست مال زیده بلکه امره میگم خب احتمال میدید در کلامه ای هم مال زید باشه هم مال دقیقه کنید. خب میریید که به مالک بوده مال بیشترتون اشتباه میگن ندیدید. چون خودش بخته و مال مردم مطره و ما راه هم داریم خودش رو به ذر مییم قیمتش یا بدنش رو به عمل میگیریم. این بحث اصالت و ظهور این بحث اسات و حقیقه نیست این بحث تمبدوز اوقللای و اسات رایقه نیست این خل میدمشه رو براتون روشن شد. اینکه که و مثال آاقگوی گول رو انلا اوقللا لا یا عذران العبد المخالف به ظاهر کلام المولّا عن بعد او به حصول و مثال عرض اووردن در ما این درست نیست. البته از اینکه امروز داده ایم، خوب مثال ها قابل از هر برای حال در دانشگاهحقوقی و قیمت ر وکن این تاریشه. آثار آزار باکستانی بددومولا چیزی نیستی از م جامعه ما وجود داشته بود این چیزی بوده که رفته از روی نآبط زالمانه به نفراز دستی منتیر شده. حالا آیاانه معرت این نظر از این نقطه ما از کردیم در مسائل قانونی هم رجوع به بددو ملا مشایم. مثلا ملا حرف اال احتیاطتون در موردوارد احتمال این اینکه ارباز احیاط بکنه در مولا یا خصوص مولای حقیقی اینها نمیشه معیار اصول قرار بگیره اصولا ما ما اصل بردی رو به عنوان که اسلام امضا کرده قبول داریم لکن وظایف عبد و مولا به مثلا احتزابش درست هست یا نه اینم فرق تعیین میکنه نه اینکه علاقه لایو از اثركم و چون او غلالایا از زیر برای اصول بشه اصولا زیر بنای فقه بشه دقت نموردید فاصله کلام و با کلام ایشون ما میگیم این که آیه اوغلا او رو معذور میدونن یعنی این وظیفه سپره شیخ و بیبیه کجا میگه مد از اصول میگه اصول چی میگه لازم وا ظهور بشه اگر لز ظهور نداش مولا هر نداره عملش حساب کتاب بکنه به چه مناسبت اگه از انواع ظلم باشه بعضی آدم حرف بزنه حرف مجمل بزنه حرف بیستر و, شرف بزنه. بعد و حرف بزنه بعضی عذرا ما اخذ قرار بذاره حرفای مجمل این اصلا امر شریعی نیست این فقه که وزیقه عبدال مولا رو معیم میکنه یعنی تصور ما اینه نه اینکه که عبدال مولا زیر بنابشه برای حکم و اغلا حکم و اغلا برای اصول حصول هم برای فقه نه این ترکید قصه به هم خورده. خب بعد ایشون میتونه نه این فیلم آزا کنه المخروف تحصیل الواقع لا یعملونه به مجرد ظهور مالم یحصال لهم الاحتمال اتمنان به الواقع یه عجیبه دیگه حالا این مطلب رو بعد این دو تا اشکال تو اینجا این كلام ایشان یه اشکال سوممی هم بر کل کلام هست بعد ارزش می‌کنه که حالا چون دیگه بعد بعد کما یذحنل اباظ خلاف کلام که كلام تبیب هم لای عملونه به این به خاطر تنجیز واقع یعنی به فهمیت محتمله چون ما در زندگی اون یک ترابطی بین این دو بارو مراعات می‌کنه تناسو رو یکی اهمیت محتمل که قوت احتمال توی بعض سلامات اون به قوت احتمال نه زفت صحیح اینطوره یکی قوت احتمال در مرحله احتمال قوت و زفت مثلا در مرحله محتمل اهمیت داردن و ما یک رابطه ای رو برقرار میکنیم مثلا اگر احتمال دیدیم که این چیز رو بخوریم مثلا یک, یک لحظه گیج شوشیم این احتمال اگر او 80-90 باشه احتمال احتمال 5 درصد احتمال نکود چون محتملش به مهم نیست اما اگه احتمال میدیم این سم باشه ولی 1 درصد باشه دست نگه میداری ولو احتمال ضعیفه و کنون اهمیت محتمل تأثیر خود یه تناسبی در زندگی اغلایی خود ما بین این دوتا ما برقرار میتونیم قوت احتمال و اهمیت المحتمل یه تناسبی ما بین ها هست خب این که خارج از محل میفهمن بله. ک در ضمن از این کلام تیم ما رضا خان المطلوب خروج عن حملت تکفیر این همون مشکل اساسیه این مشکل اساسی نه یعنی ایشون برداشتن بحث وجزا و رد دادن به قانون و نظام و خروج عن تکفیر و تحصیل الامن و نال عقاب اگر حجیت ظهورات را در این مقام نذارید این منشأ شده که آقایان در باب قوانین و در باب به حساب روایاتی که در احکام است یه مقدار به اساس الهیقه تعبدی مراجعه کنند نه به اساس ظهور عرفی حالا خیال می‌کنه مثلا این کافی نیست خیال کردن این اساس شریعت میشه خیال کردن نصوص مجملات خیلی از نصوص واطر میشه به که این خیالات درست نیست بله وقتی مذهبی که حتی بناؤ و غلاحه العمل به ظواهر مطلقه نه بحث تکلیف نیست در بحث عادیا ما صحبت میکنیم بس افراد میدن دکان مقالی چیزی میفرند چیزی میفروشن، تمام این زواهر خجییت این راجع به یک مقدار کلامیشان یه بحث کبروی به شده کلامیشانه که بعد عرض میکنه. بعد در امر دوم فضهب المحقق والقومی الاقتصاص و خجیت زواهر و قصد افهامو بعد ایشون فرموزن که البته در قوانین، در جلد ایک، در چند صفحه متعرض شدن من هم خودم متن ایشون استخراج کردم. نمید کتاب های اینجای بود که در سرکی رو من بشنشد نکد به متن کتاب مراجعه کنم. من هم تا به متن کلامی کسی مراجعه کنم نه رو نمیتا فعلا از کتاب آل خویی که ایشون هم از رسائل شیخ انساری اون هم باز به توضیح ندیشان من بیرین اکتفاق می کنم لیکن چون خیلی احتیاط خاصی قضاياات مبالغه فعلا نسبت به محضر قومی مقدار رو نمیدونم سه خود عبارت درست کاملا واضح در ایشون دو وزید هم دو وجه شده یک وجه وجه منع کبراس یک وجه هم وجه منع صغرا مراد از کبرا به طور کلی انقلاب متد در حق بنقصدی افهامو صغرا هم در این در خصوص روایات مورد استفاده بعد ایشون اما وجه اول چون منشأ بودجه و اسات از ادمه گرفته گرفته. چون اصل عدم قفلته عدم قفلت در متکلم در تقریم اصل عدم قفلت در مخاطب در تفهم بعد ایشون میفرماید که یا با به قفلت متکلم برگرده یا به قفلت سامع باکن بلکه زد... کلام ظهور داره ظهور کلام منشهش اساس عدم قفلته این خلاصه ای بحث بعد ایشون میفرماید لكن این در جایی است که متکلم در مقام بیان باشه و اما گاهی اوقات این درجه ایست که متکلم یک شخص معین در نظر داره این مخاطب هم پفلات نکرده موشید اما اگر این مخاطب در نظر ایشان بوده مخاطب دیگری شخص دیگری کلام رو ببینه در اینجا دیگه یک عصی نداریم. چون کسی که به اسطلاح مقصود به افهم نیست فقط اصال تو عدم در درش پیشی محتمل است که متکلم یک قرینه دیگه داره محتمل است یک قرینه حالیه بین متکلم و این مخاطب بوده یک پدری به پسرش مطلبی گفت ما اونه که میشتین ازش جمهوری شو پدر با خودت قرینه خاصی باشه قرینه حالیه باشه درک می‌کنیم دیگه اساس آدم قله اینجا در اینجا دیده نمیشه بعد اینشون اشکال دیگری همون اشکالی که من دیروز عرض کردم این اثارت زهور در جه این که متکلم بر قرائن منفصله اعتماد نکنه و اما بعد علم بذاره فلای تجیح اثارت زهور ولای جوزر اخت ظاهر کلامی در غیر المحصود اخام و بعد این میرسه در ما نحنوفی من الواضح نلعیمه علیه کسی کسیرم ما کانو یا اعتمدون القرائن المنفصله و روبما کانو یا افترون البیانم وقت خطاب خب الان همین مسئله اینطور معربو در السننه اصحاب همین مسئله که بر قبر معصوم نمیشه مقدم نماز کن این در یک توقی از ما ما حدیث امام علی علیه السلام خب نمیشه بگیم مثلا این هم هم همه ائمه بودن قبل رسول الله بوده قبل سایر ائمه دیگه بوده سید الشاعه بوده کسی مقدم بر قبر نماز نمیخونه بگیم مثلا این مطلب در روایات ذکر نشده ذکر شده یه چیزی ذکر شده از خاطر ترجمه حالا من باید وقت شب رو این الان اون روایت فعندر امام لایو حاضا و لایو قدمو علیه در روایت توقییت از توجات امیری از بقیت الله سآل میکنه که ما به زیادت قبر آبار شما می مثلا که بر قبر نماز من من ارز کردم چون دلید بنابرای مشهور همین روایته فقط مقدم من نشده چون اگر در مشهد نگاه بکنید محاضی با قبر شریف هم نماز می کنم چون این روایت محاضی هم معنی خود کربلا من نگاه کردم جماعتی که بسته میشه مهاذی اگر این روایت رو قبول بکنیم مهاذی هم شاذ داره نه اینکه فقط تقدم بر قد بحث تقدم بر نیست هم مهاذی و هم تقدم یعنی وقتش سرقرر باشه جویی باشه که بهش قد مقدر مقدس ظاهر بشه الان که اتماسان خب مثلا فرض کنیم صوریات هندی حدود سالهای 300 یه چیزی کمتر بیشتر مثلا از سالهای پنجاب و و تلیبه شیعه مثلا شست, شست و یک به خاطر کربلا به خاطر قبول عیمه متأخر، این همه قبر بود وردگیم مثلا سوال نشده یا نماز و مقدم میخوندن اون بیانش خیلی متأخر آمن و من الواضح ان الامه علیه مسلام کسی اما کانوی اتن هر قرآن منفصله و رو بما کانوی بیان ان وقت الفتاب بل ان وقت الحاجه من دیروز اینو توضیح دادم که اول خود استاد، حالا دیروز داور احبارت اولشون خیلی خیلی این بود، این یک اشکال، اشکال دوم و همملوک هستانی. اندلاع خبران مربی کننده در مقام صورت لام تصل اینا تمام شده از آنها، بلغتسلیل اینا مقطعه و رو وجود قرن تند. بحث تختی که حیضان اون مسئله کیفی در زیر ثمردن تو معنی که آورده. لذا باز هم ایشون در اینجا اون بحث رو مفرق کرد برده اما جوابهای استاد رو هم به نهر مختصر بگیم و اون این که, این که کبرا ممنوعه به خاطر اینکه اسات اصالت عدم جاری نیمی در غیر محصود به افهان ایشون میگه منشه اصالت و ظهور اصالت و عدم قفل هست ولیکن حق اینه اصالت ایشون با اونجا ای که تفاوت داره که در حاشه هم اشاره کرده من دیگه این خودتاتی نیم ایشون اینه که اصول اسالت زهور خود که اصل مستقلی او اولا اسات از آدم قفل نمیه کسی یکی نیستن مثلا اسات از آدم قفل در علم جریان نیست اساس ظهور جریان نیست ایشون منشأ اسالت رو رد میدونن ان منشأ اسالات زهور رو برغه از اینکه مرش ذهن ما اون رابطه اعتباری است تو ذهن ایشون تعبده یک چون شهر داد دا نمیخواد تقرار بکنم اول به قدیه اصلا آمنه منشأ اساس اصالت اساس ظهور اصالت و ادامه وقته نیست خلاصی بحثیشان ولی متحصله به موازکرنا انده اصالت و ظهور به نفسان نه رسول و قلائیه این را که بینید رمه موازکره در این که اعماله اصلا استقاع برقرامه منفصله این درسته اما این معلیشی نیست که کلام از ظهور هسته بشه این کلام معناش نیست محب... معناش اینه که فلسفه‌وار بود چون اینده ممکن است بر قرار منفصله اعتماد کرد آن به هر حال اینو بعد بیان کرده مخصوصا توی تفکر شیعه این امامت از بدش تا شروعش یک واقعیت بوده ممکن امیرالمومنین بر نفرن نباشه از امامون حسین برن نباشه از اجزاجو اما از رضا هم فارسی پس ما که میگیم مراجعه بکنید بعد از تحت از کاراین. این راجع به این مطلبی که شون هست. مراجع به نظر تختیه در روالتام همون کلامی که پیروش خودیم داره خوبی باز هم جا برنده. یعنی اون کلامی که در زیرگورده در متنم اوردن، دوست نمیگیری کلامش. هاستش که این تختیه از اصحاب اینه مثل کلینیکی در بین میکنه. انجام کرد که یکون آره است و ولع است و سغر. چون سرگر خوب کاراین نیسته هست فکر میکنم. آره کاملا که این قرنه هست یا قبیه نیست این راجع به همون جوابی که ایشان قبلاً فرمده یه نکته دیگر یه هم ایشون داره و اون خلاصش اینه که این مطلبی که شما میگید کلام مختصر از محصود به افهام این فقط ما توضیح دیدیم این روایات اهل فید مقصود به افهام کیان سؤال آیا در روایات اهل فید مقصود به افهام راوی مثلا زراحت هست؟ یا چون حضرت فرمز بعدم و همه حدیث کن حاضر دینون فرمزورو هم من تأخذون بینکن مقصود به افعام علمه ما هم هستیم فرمه اله همه خیامه اینه نقطه دیگه پس نه احمد علیه السلام کلام دیده که به زرار نه به عنوان یک محاضره دین خودشون و زراره خوب کن. با عنوان حکم الهی باشه شد مسود به ام در این و حکن و خصوص زراه نیست زراره هست زباره میاد کوفره برای کوفره ن هم میکن هستن اونا می نیستند برای تق بربی و ما هستن به تبی آ خوبی اونا می بینند کلی ن میکنه کلینی کلی هم کلی هست کل نمیشه بعد وال نکنیک از ما هستی عل اون و زیامه. پس بنابرا این اگر محسود به ام هم قبول بکنید و قبول هم بکنی بکنیم حرفی شما رو کلان حوزه در خصوص من پصد افام پس عیمه علیه مسلم یه جوری صحبت این که ما هم الان استفاده کنیم عیمه اینجوری صحبت هموندن ما هم جزو مقصود به اطها اینجور نیست که ضراره یه صحبتی بین مثلا یه هست که ما بزاریم چند ازدواج می‌کنیم که خب مثلا وزید اجتماعه هم نفضا میکنه مثلا سنیان مناسب نیستن بعد مناسب نیستن شنیام که نیمخواب حضرت عرض کرده این دقیقا چه چیزی بین خود حضرت به یک رافی خب محصود دفاع میشه اما یه وقت مثلا حضرت بیان به ضرار قواعد عامه رو میگن احکام الاهی رو میگن این مراد حضرت مقصود حضرت خصوص ضراره نیست خوشی از الهیوم و قیامت پس محصول به ابحان هم برپر قبول بکنید. شامل ما میشه. این بلاسه یه کلمات مردم استاد تا اینجا فردا انشاءالله دیگه نقل ما کنید. که نقل یه مردان نقل میشه که نقل کنید کلمه کلمه فردا انشاءالله. از والله باهم.